ای مسلمانان زمانی دلچراغن دل بودیم بلبلانه خوشنواهای کوچه باغاں بودیم بلبلانه خوشنواهای کوچ باغاں بودیم زندگی برکام کام ما بود از قفس نبود از شجاع در جهان شمشیر بران بودیم از شجاع در جهان شمشیر بران بودیم روی دریا راه می رفتیم و دریا رام ما یک تازه دلدل اقلیم ایمان بودیم یک تازه دلدل اقلیم ایمان بودیم اے چرا مشہور کافر گشتیں ماز نسل ہیدر و فاروق و عثمان بودیم ماز نسل ہیدر و فاروق و عثمان بودیم ما اگر امروز زاریم در دل, دل روزیان فاتحان روم و مصر و ملک ایران بودیم فاتحان روم و مصر و ملک ایران بودیم. از مسلمانی مسلمانان فقط نامی بجاز دل خوشی مزین که از دهجد مسلمان بودیم دل خوشی مزین که از دهجد مسلمان بودیم ای مسلمان خدا حکم جهادی داد آس بحر اک مشروج گهاری جن فداین بودیم بحر اک مشروج گهاری جن فداین بودیم اے چرا چراغ کافر گشتیم ماز نسل ہیدر و فاروق عثمان بودیم ماز نسل ہیدر و فاروق عثمان بودیم ما اگر امروز زہار در درد نے دی روزیان فاتحان روم و مصر و ملک ایران بودیم فاتحان روم و مصر و ملک ایران بودیم از مسلمانانی مسلماناں فقط نامي بجااز دل خوش م اینکه ا ج مسلمان بودیم دل خوشی مژنگ کے از, از دہجت مسلمان بودیم اے مسلمانن خدا حکم جہاد داد اس بحر اوک مشروز گہاری جن فدا ہیں بودیم بحر اوک مشروز گہاری جن فدا بودیم از خدا تا تاباز آردن عز قدیم دیر بازی از برہ ہای شدید گر بودیم از خدا خواہم با باز آردن از قدیم دیر بازی از برهای شدید گریان دیربازی دیر بازی از برهای دیدگریان بودیم